امام سجاد سلام علیه در تلیعه دعای 20 از ادیه مبارکه صحیفه سجادیه عاجزانه از خدای متعال درخواست میکنه که خدایا وجع یقینی افضل الیقین خدای یقین ما را برترین اطمینان ها و اقین ها قرار بده راه علم و حتی کمال علم آموزش مطالعه است هرچی انسان مطالعه کنه کلاس بره و مباحثه کنه با اهل اون علمی که به دنبالش هست بیشتر قنص بگیره هم نشینی داشته باشه کمال علم رو بهش راه پیدا میکنه و دست پیدا میکنه اما یقین اینجور نیست یقین با صحبت و مطالعه و مباحثات طرفینی و نشست و برخواست آموزشی به دست نمیاد چون اون موضوع جایگاهی که یقین متعلق به اون جایگاه هست قلب انسانه قلب تعبیر دوم روحه گاهی میگن روح، گاهی میگن قلب، گاهی میگن نفس همه اینها بگه معناست روح با آموزش معمول سر کلاس نشستن، سر مثلا جلسات سخنرانی و غیر و زالک نشستن مستقنی نمیشه این حرف بلیه و صحیح نیست که بگیم بعد از شنیدن یه صحبتی این روحمون جان گرفت مثلا ذهن انسان خوش آیندش میشه با یه شعر قوندنی با یه صحبت مثلا بلیه و گیرایی ذهن برش خوش آینده. اما اون چیزی که روح رو تقویت میکنه اطمینان میبخشه می‌بخشه و به تعبیری یقین رو بر انسان میاره از جایگاه رو چیزی نیست بجز مسئله عمل انسان با عمل خوب روح انسان جان میگیره تقویت میشه زنده میشه با عمل بعد روح انسان ضعیف میشه، بی جان میشه، بیحال میشه که سالت پیدا میکنه اون چه موجب مرض و یا شفای روح میشه، عمل انسان اگر یه وقت از کلامی، یه صحبتی، یه حرکتی انسان جان پیدا میکنه به دلیل این هست که اون حرکت یا بده یا خوبه خوب باشه انسان روحش قوی میشه روحش جان میگیره اگر نه در راستای بدیهایی باشه که در گفتار و عمل میبینه انسان یا میشنبه خب تحصیل و تحصیلشن برد می‌تونست با همون هست رضا خودشی که موضوع تیبار از ایمان سای سلام هست از مبوری همه نه از مبوری آموزش و های ذهبی امتظایی من همه این رو داشتم اینکه معلوم می‌شه معنای علم با معنای در این علم از مغوره آقایه و مسائل انتظاهی ذهنیه یقین از مغوره عمله از مغوره روح و قلب است. اگر امام سجاس آمون علیه از خدا عاجزانه تغذار میکنی که خدایا یقین من رو عبزل یقین ها قرار بده برترین یقین قرار بده اگر از مرگوله ذهنیات بود، از مرگوله مثلا فکری بود، خب میرن پیش استاد فن افرادی که بلخاره خیلیت هر فنی هستند میتونن انسان رو آگاهی بدن، اون هم نهایی ترین آگاهی رو ولی اومده در خونه خدا، که هیچ راهی به نیست که خدا باید کمک کنه تا انسان یقینش قوی تر بشه خب این از معنای یقین که امیدواریم چونی سوشیم معنا رو مثلا گویا کنیم اما راه یقین درست و یقین صحیح که جان هست روح بخش هست به انسان رو تعالی میبرشه چه مسیریه اون مسیرش که خدا جلوپای انسان گذاشته و دلیلی که امام سجاد اینجور با خوبچیکی خودش رو در مقابل خدا قرار میده و تقاضا میکنه از خدا یقین من رو برترین یقین قرار بده جهتش همینه که به دست خداست شروع به دست اوردن اتمنان اتمنان قلبی یا بین قلبی اون مسیر که خدا تعین کرده پس چرا اون مسیر رو پیمایش نکنیم چرا امام سجاد با وجود اینکه که مسیر حق رو نه تنها بلد امام الحق امام خوبی هاست با این حال باز اومده در خونه خدا در اعتماس میکنه که شاید من یقین داشته باشم ولی یقین من رو برتر قرار بده معلوم میشه انسان آجستر از این هست که خودش با تکیه به فرامن الهی فرمون رو دست بگیره و جهت رو طیل کنه خیلی موقعات تجربه کردید یه راه درستی رو یه مسیر حقی رو انسان پیمایش میکنه ولی اونجور که باید نتیجه نمیده معمولا اینطور هست انسان حرکت میکنه اما خودش انسان متوجه میشه که اتیک های به خودش حتی در مسیر حق و حقانیت خیلی انسان رو به جایی نمیرسونه مشبرکن نیست به قول محروم اون که مشت انسان رو پر میکنه مدد است. خدای متعال باید دستگیری کنه خدای متعال باید مدد کنه تا انسان به سرمنزل حق و حقیقت و بعد از پالایش روح به جایگاه کمال روحی و الهی و انسانی دست پیدا کنه خلاصه کلام این اگر انسان در راستای تعالی روحش و تکامل روحش میخواد قدم برداره راهش راه حق و است که خدای متعاجل روی پای ما به وسیله احمی علیهان سلام بذاشته و آن و آنان باید از خدا مدد بخوایم که این اعمالی که انجام میدیم برای رسیدن بیگرین منتج به یقین بشه